بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به بحث تعارض بین ادله البته این تعارضی که معلف مطرح میکند فقط تعارض قرآن و حدیث رو مطرح میکند اذا تعارض نطقانی زمانی که تعارض داشتند دوتا نطق قبلا خودش گفته بود منظور از نطق چه هست قرآن و سنت کلام الله و کلام رسول فلا یخلو از این حالتها خالی نیست تعارض از این حالات خارج نیست اما ان این یکون عامین یا اینکه این دو تا دلیلی که در بینشون تعارض وجود داره هر دو تا عام هسند او خاصین یا اینکه هر دوتا خاص هستت؟ او احدهما هما عاما والآخر خاص یا اینکه یکی از دوتا دلیل عام هست و دیگری خاص هست او كل واحد من عام من وجه و خاصا من وجه یا اینکه هر یکی از دوتا دلیلی که بین تعارض هست از یک جهت عام هست و از جهتی دیگر خاص دو دلیلا در مقابل هم قرار گرفتن تعارض هست ولی از یک جهت عام از جهتی دیگر خاص هر دو تا دلیل کان عامینی اگر دو دلیلی که تا تعارض وجود داشت هر دو تا عام بودند اگر دو تا دلیل عام هر دو تا عام بودند دو دلیلی که بینشون تعارض داشت عام آمنی خب چی کار میکنیم و امکن الجمع بینهما جوری و امکان جمع داشت اولین کار اینه که جمع میشه بین دو دلیل یعنی هر یکی از آن دو حمل میشه که با دیگری تناقض نداشته باشه و این اولین راه در هنگام تعارض است یعنی جمع بین دو دلیل مانند اذا دو بغل احاب فقط طهور زمانی که پوست دباغی شد پاک است در جای دیگه اومده ولا تنفع من المیتتی به احاب ولا عص از میت اس پوستش استفاده نبرید اونجا گفته بود احاب اینجا احاب که دباغی شد پاک میشه اینجا میگه از احابش فایده نبرید خب تا آرز هست دو تا حدیث هم عام هستن جمع چطور هست؟ جمع این هست که دومی رو میگیم تا زمانی که دباغی نیست فایده نبرید دباغی که شد فایده ببرید خب این راحت بین دو حدیث جمع میشه و به هر دو تا عمل میشه و این نمی ممکنه الجمع بین اغر امکان جمع نبود بین اون دو تا توقف فهما الا لم يعلم التاريخ توقف میشه عمل نمیشه به هیچ کدوم اگر تاریخ دانسته نشه خب اگر تاریخ دانسته بشه چی فان علم التاريخ تاريخ دليل قبلش بعدش فان التاريخ المتقدم بالمتاخر. منسوخ میشه اونی که قبلا اومده با اونی که بعدا اومده اون حکمی که قبلا اومده با اون حکمی که بعدا اومده منسوخ میشه اگر تاریخ دونسته شد و اگر نکه همون یتوقف پس این برای اولی مثال زدیم یعنی امکان جم داشت برای دومی هم فمن تطوع خيرا فهو خير له وانت صوم خير لكم اختیار داده بین شخص خوردن و روزه گرفتن روزه رو برتر درسه ولی دیگه ای داریم که در تعارض با این آیه هست که هر کسی از شما ماه رو دریافت باید روزه بگیرد دیگه اختیاری برای خوردن ندارد اینجا میگن چون امکان جمع وجود نداره دومی منسوخ کرده اولی رو یعنی اختیاری باقی نمونده است روزه نمون است برای شخص سالم اختیاری باقی نمانده است و فقط روزه بگرت یعنی اون اختیار قبلی منسوخ شد و کذالک امکان خاصی و همچنین زمانی که دو تا دلیل امکانا که مسننه هست کانا به دو تا دلیل برمیگرده این الف و زمان همچنین زمانی که دو تا دلیل خاص بودند یعنی اگر امکان جمع داشت جمعشون میکنیم مانند این که حدیثی اومده است در, حجت در حج پیانبر صلی اللہ علیہ وسلم که ظهر رو در مکه خوند حدیث دیگه وجود داره که در مناخوند خب اینا در تعاروز با هماند. اگر امکان جمع باشه جمع میکنیم امام نووی جمع بین این دوتار رو چنین گفته است که پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم رو در مکه خون در اول وقتش ولی باز هم دوباره در مناخون برای افراد دیگر اینجوری جمع کردی و این امکان خاصه و همچنین هست حکم زمانی که دوتا دلیل که در تاروزهنان خاص باشد. یعنی اگر امکان جمع جم اگر امکان جم نداشت و تاریخ ها مشخص بودن اونی که آخر نازل شده منسوخ میکنه اونی رو که قبلا اومده و اگر نه توقف البته توقف آخرین مرحله هست بحث ترجیح هم وجود داره یعنی اگر تاریخ ها دونه سنه میان لحاظ سندی و لحاظ متنی بررسی میشند و اونی که سندن یا متنن قوی تر هست و راهایی که اصولیون بیان کرده اند ترجیح داده میشه و اگر چنانچه ترجیح نبود اون موقع توقف و اگر راه تا دو دلیل خاص زمانی که امکان جمع نباشه دومی ناسخ اولی هست دو تا آیه رو مثال میزنند یا عیوا النبي یو اینا حلال نا لکه از زنانی رو که مهریشون دادی برای تو حلال قرار دادی آیه دیگری آمده است که بعد از این دیگه زنی برای تو حلال نیست که میگیم مگر این تلاشی رو خب داده یعنی بیش از این دیگه برای تو زنی حلال نیست که دومی ناسخه اولی هست. و اگر نسخ هم نبود تاریخ مشخص نبود ترجیح مانند داستان این دو حدیث که پیغمبر خدا در این حدیث اومده با میمونه ازدواج کرد در حلال بود ابن عباس میگه نه در احرام بود این دو تحادیث با همدیگه تعارض داره این دو تحادیث خاص ولی اهل علم ترجیح دادن اولی رو چون خود میمونه میگه که ما در حالت حلت بودیم میگند، اونی که صاحب قصه هست اولاتر هست و دو من در تعیید حدیثش احادیث دیگه وجود داره و اگر امکان جمع نبود تاریخ دانسته نشدند وجود نداشت که ما یکی رو ترجیح بدیم اون موقع همون توقف است. خب و ان كان احدهما عاما حالته ثومی رو میگه از حالت تعارض و ان كان احدهما عاما والاخر خاصا اگر يكي از دو تا دلیل عام بود و خاص بود فیخص العام بالخاص عام بخاص خاص خاص میشه اون قسمت خاصه رو جدا میکنیم بقیهش در جاش میمونه این دیگه ساده است هم قبلن امثله آوردیم و مثالی که میارن در قرآن اومده و سارق و سارقت و فقط و عیدیه همان دوز چه مرد باشه چه زن دستشون رو قطع کنید این عامه در حدیث اومده که دست دوز قط نمیشه مگر زمانی که ارزشش به روبع دینار یا بالاتر باشه اونجا میگه دوز رو دست قط بشه مطلق اینجا میاد میگه زمانی که دوزیش به اندازه روبع دینار رو بیشتر بود خب اینجا میگیم عام اون عام معای خاص میشه این. یعنی زمانی دست قطع میشه که دوزیش به یک چارون برسه پس زمانی که یکی از دوتا دلیل عام بود و دیگری خاص عام به وسیله خاص خاص میشه و امکان کل واحد من هما عاما من وجه و خاصا من وجه فیخص عموم کل واحد من هما بخصوص آخر اگر هر یکی از دو دلیلی که در تعارض با همدیگر دیگر هستند از جهتی عام بودند و از جهتی خاص عموم هر یکی از اون دوتا با خاص دیگری خاص میشه با مثال در حدیث اومده است اذا دخل احدكم المسجد فلا یجلس حتی يصلي رکتین زمانی که وارد شد یکی از شما به مسجد پس ننشیند تا زمانی که دو رکعت بخواند این خاص در مورد تحیت المسجد و عام در وقت هر وقتی که رفت در مسیت. حدیث دیگری هم لا صلات بعد صبح حتى تطلع الشمس نمازی بعد از نماز صبح نیست تا خورشید طلوع کند ولا صلات بعد العصر حتی تغرب الشمس و نمازی بعد از عصر نیست تا خورشید غروب کند دومی خاص هست در وقت ولی در هر نمازی عام هست برای هر نمازی عام هست شامل تهیت المسجد قبلی هم میشه و نمازهای دیگه الو این اختلافی هست این مثالی که زدن گروهی چونین جمع چون خاص کردند عام هم دیگر رو که میگویند تهیه المسجد در تمام اوقات جائز است یعنی عام دومی رو با تهیه المسجد خاص کردند و خیلی از فقهای های نظریه رو راجع میدند خیلی دیگر در این رابطه اولی رو و جمعه راه های با این دوتا دلیل رفتند در کل پس حالت چهارمین هست زمانی که یکی از دو دلیل از جهتی عام باشه از جهتی خاص دیگری هم از جهتی عام باشه و از جهتی خاص خاص این دلیل که در تعارض با اون هست آم اونو خاص میکنه و خاص اون عام اینو خاص میکنه آیات و احادیث رو قبلا هم در این رابطه مثال زدیم تکرار نمیکنیم. این شد از بحث تعارض و این تعارضی که البته در این بحث مطرح کرده بود مؤلف تعارض بین نصوص بود نه قیاس و اجماع مال قیاس و اجماع هم که در اصلا کلا بحث اجماع و قیاس و اینا رو بعد از تعارض بین ادله میاره موافق و پیروز باشید